سباب لطف بگو ان قضال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را؟ شکر فروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند توتی شکر غرور قرور حسنت جازت مگر نداد ای گل که پرسشی نکنی اندلی به شیدارا به خلق لوت توان کرد سید عهدنذر به بند و دام نگیرند مرقدانا را ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست صحیقدان سیه چشم ما سیما را با حبیب نشینی و باد پیمایی بیا دار محبان باد پیمارا جز این در نتوان گفت در جمال تو عید که وضع مهروفا نیست روی زیبارا در آسمان نعجب گر به گفته ی حافظ سرود زهره به رکس آورد مسیحا را